دیگر از این چشم ها باکی نداشتم. فکر کردم که اصلا به خانهش نروم. برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد. بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اسرار او پی برده. باز رأیم تغییر کرد. مبادا از سلطه من خارج شود. مبادا پس از یک خواب راحت ارادی خودش را باز به دست آورد. تصمیم گرفتم. مقداری کتان به هم دوختم. تابلو رو در آن پیچیدم. کاغذ از انبار جمع کردم. بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم. با نخ قند لفاف را محکم بستم، و تابلو را رو رو روی هر دو دست به سر گذاشتم و به دفتر رفتم. به تالار موزه برگشتم، نگاهی به جای خالی تابلو انداختم. چراغ را خاموش کردم، در را بستم و به دفتر آمدم. به دربان دستور دادم که برود و بیا بیاورد. راه دیگری برای بردن تابلو نبود. در اتومبیل نمی توانستم بگذارم. بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود بسیاری از شاگردان و معلم این کارهای خود را به خانه می بردن. کسی نمی توانست کوچک از زن به من ببرد. از فرط عصبانیت میلرزیدم. هوا سرد بود و برف و باران چند روز اخیر داشت یخ میزد. میلرزیدم. اما نه از فرت سرما. نه. گویی دارم جنایتی مرتکب می شوم. بهترین اثر بزرگترین استاد ایران را داشتم از دست میدادم. آیا می ارزید؟ خودم نمی دانستم چه کار دارم می کنم. تا اینجا نقشه مطابق میلم انجام شده بودم اما از این به بعدش را دیگر نخوانده بودم چه کنم با این تابلو؟ آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده رو در خانه این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم؟ فردا چه جواب بدهم؟ به خودم چه بگویم؟ به این لاشخورها که به اندازه سر سوزنی به خونر استاد وقی نمیگذاشتن چه جواب بدهم؟ به من چه خواهند گفت؟ کم کم داشتم میفهمیدم که این زن مرا هم تلزم کرده واقعا کی در تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود؟ من یا او؟ آیا واقعا اشخوه علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از تلاش او مرا وادار میکرد که نفهمیده و نسنجیده آب روی خود را بریزم و یا اینکه این حرز مرا هم از قفص زندگانی تنگم رو بوده بود ساعت هشت بود دمه در مدرسه ایستاده بودم و میترسیدم که چگونه به روی دربان که با درشک انتظارش را داشتم بنگرم از دور صدای پای از پای درشک روی یخ شکننده شنیده میشد پشت به طرفی که صدای نعل از پا روی برف و یخ میخورد که در دربان هم را نبیند فوق روشن و زمین و خانه ها در سفیدی ماتی غرق بودند اتومبیلها بی ا بوغ میزدند و شور و شر زندگانی را به رخ من میکشیدند برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت شیطان در جلد من رفته بود وقتی دربان آمد خداحافظی کردم و به او گفتم امشب کمی دیرتر بخوابید شاید همین امشب تابلو را برگردانم در خیابان اسلامبول نور رنگ پریده برق آسمان را تاریک تر میداد. ابرهای سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سردی بینی و برگهای گوش من را میخراشند. کلاهم را تا روی چشمانم کشیده بودم تا کسی مرا را نشناست. ساعت هشت شب بود و بحباهی آمده شده جمعیت. چه بیخیال مردم در حرکت بودند. چه خوشبخ بودند. اتومبیل ها مثل قرقی از چپ و راست می گذشتند بوق که در این وسط آهنگ ناجوری بود پشت سفارت انگلیس زنها عقب مشتری پرسه می زدند و فکولی دنبال تقمه می دویدند. یکی از آنها وقتی درشکی مرا دید ایستاد نگاهی به من انداخت به من سلام کرد و متدکی گفت دلم میخواست خواست چی تاخت می کرد می خواستم زودتر آرامشی را که احتیاج به آن داشتم در خانه ی زن ناشناس پیدا کنم. به درشكهچی گفتم توندتر برو اینها مست هستند و اسباب عذیت مرا فراهم میکنند پیر مرد از من با جرأتتر بود سگ کی باشم مگر شهر هرته زمین یخ بسته اگر توندتر برم اسبا لیز میخورم من به حرفهای چی گوش نمیدادم ای دلی درون مرا میکاوید از کجا به پیروزی قطعی خدا میتوانم اطمینان داشته باشم نکند این زن هم یکی از آن زنهای حادثه جویی باشد که پس از شهریور کمابیش دیده شدند. شاید میخواهد مرا دام اندازد و, و تابلو را از من بگیرد و شهوت شهرت پرستی خود را ارضا کند. تکه کاغذی را که روی آن نشانی زن ناشناس را یادداشت کرده بودم درآورده بودم. مچاله شده بود. در پرتو به یک چراغ سر یک چراغ را خواندم. چشمم به اتومبیل آلبالویی رنگی که زن ناشناس با آن به مدرسه آمده بود خورد.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 بفرمایید تو. خانم در اتاق خودشان نشستند نمیخواهید پالتوی را بکنید؟ فوری دریافتم که در یک خانه اعیانی هستم. حال بسیار زیبا بود. میز گردی کتویی در وسط اتاق قرار داشت. روی آن کاسی از بلور تراش گذاشته بودند و در آن گل میخک جلوه میفروخت. چلچراغی که از سخف خوشرنگ آویزان بود تمام حال را روشن میکرد. یک گلدان بزرگ نقد در ای قرار داشت. تابلو را به کنار میز کوتاه تکیه دادم. دخترک پالتو و کلاه مرا گرفت. نگاهی به اطراف خود انداختم. همه چیز در نظرم جالب و با سلیقه می نمود. احساس کردم که در این محیط قریبه هستم. خود را حقیر و بیچاره یافتم. وحشت کردم. نکند که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کند. در مدرسه من صاحبخانه و فرمافرما فرما بودم اما اینجا همه چیز با نظر حقارت به من نگاه میکرد. چشمم نمیتوانست با گلدان تراش و چلچراغ و دیوارهای خوشرنگ و قالی خوشنگار عادت بگیرد من تمام اساسی مدرسه را میشناسم. از تاریخچه وجود آنها با خبرم سالها آنجا زندگی کردم تمام تابلوهای آن را با دست خودم لمس کردم اما اینجا در این خانه پرشکوه و جلال دست و پای خود را گم کردم. خدمتکار گفت بفرمایید آقا. در اتاقی را باز کرد. فرنگیس روی صندلی راحت نشسته بود. لباس سبز تن چسبی پوشیده بود. جوان جلوه جلفه می کرد. صورت نیکوی او مرا به حال آورد. قرور گرفته من جان گرفت. بیان که توجهی به زن ناشناس کنم به خدمتکار گفتم شما تابلو را بردارید بیاورید توی اتاق. اما مواظب باشید به در و دیوار نخورد. وقتی کلفت کلرفخواان را بلند کند گفتم: نه نه نه اینجوری نمی شود وسطش را بگیرید. بلند حرف میزدم که فرنگیس را متوجه خود کنم چند ثانیه ای به خواندن روزنامه که در دستاش ادامه داد. به شنیدن صدای من از جا بلند شد. مجبور گردید تا دم در اتاق به بیشوااز من بیاید. دنبال خدمتکار پالتا به دست مانند کسی که به آمده شد در اینگوونه خانه ها عادت دارد وارد اتاق شدم. سری به خانم تکان دادم و با چشمانم مراقب بودم کلفت تابلو را کجا می‌گذارد اما تابلو بزرگی که به دیوار مقابل آویزان بود جلو توجه مرا کرد این منظره چماران که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود زیرا من چند طرح آن را دیده بودم و مدت‌ها عقب خود تابلو می‌گشتم وقتی آن را در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد دیگر با این همه قرائت نمی‌شود کرد که این زن استاد را نمیشناخته است همین که خدمت تابلو را به زمین تکیه داد به طرفش رفتم. آن را از دستش گرفتم و گفتم، بسیار خوب، من خودم بازش میکنم. کلفت داشت از اتاق خارج می که فرنگیس آمرانه گفت، سکینه سب کن. چه میل داشتید آقا؟ میل دارید یک گیلاس کنیاک به شما بدهم؟ با این لحن معدب و مهربان، منتها ساختگی، خنده شاد و دلگوشاد همراه بود. اگر این زن بخواهد باز هم با من اینجور رفتار کند دیگر از جا درمیروم خوب میداند که من به چه قصدی اینجا آمدهام میداند که اقلا یک ساعت هم شده باید مطیع من باشد و نگفتنی ها را بگوید با وجود این با همان لحن که هنگام ورود به دفتر من صحبت میکرد میخواهد گفتگو کند رو کردم به و گفتم مرسی من چیزی نمیخواهم صورت فرنگیس از بیان تند و خشن من سرخ شد جرأت نکردم به چشمایش نگاه کنم از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت پرسید پس اجازه بفرمایید بیاید و تابلو را باز کند خیر خانم این خدمت را به من واگذار کنید استدعا می‌کنم کلفتتان را مرخص فرمایید با سر اشاره به سکینه کرد و او رفت بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم و روی صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیز بود نشستم فرنگیز کمی مکس کرد بعد آمد نشست یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود. صدای عبور او اتومبیل و درشکه و حتی رهگذران شنیده میشد. بعد او حوصله سر رفت. نمی تابلو رو به من نشان بدهید؟ تابلو رو به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم. اول باید معامله انجام بگیرد. گفتم که حاضرم هرقدر پول بخوایید بدهم. خدمتتان ارز کردم که من حاضر نیستم شرافت خود را به این ارزانی بفروشم. به علاوه اگر بخواید با همون لحنی با من حرف بزنید که به نظرم ساختگی و است فوری را رو برمیدارم و میروم من آمدم اینجا با شما سمیمان ها و صادقانه صحبت کنم خانم. ببخشید اسم شما رو هنوز نمیدانم شما رو فرانگیز خانم خطاب می کنم. به من قول دادید هر چه بخواهم به من میدهید. چه می خواهید؟ شما باید آنچه به هیچ کس نداده اید به من بدهید. یعنی چه؟ اگر توضیح بخوایید، مجبورم اول مقدمه بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید. من اگر از شما صداقت و سمیمیت میخواهم، باید خودم هم با شما صادق و سمیمی باشم. تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شدم. ده سال است که من این تابلو را که الان در اتاق شماست هر روز میبینم. بنابراین ده سال است که من شما رو میشناسم. چند لحظی مکس کردم. به انتظار اینکه او بدود توی حرف من. و من به او تحکم کنم و بگویم قرار است با هم راست بگوییم فرانگیز هیچ نگفت معلوم بود که مسخر من است. انکار نکرد سرش را پایین انداخته بود انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود مانند مجسمه بی حرکت نشسته بود پیراهان سبزی که بر تن داشت به او می آمد گیسوان آویخته روی شانههایش چند موج داشت فقط گردی صورتش پیدا بود ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحت تکیه کرد و چشمهایش را به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار دوخت کوشیدم نگاهی نافذ به چشمهایش بیندازم اما به من نگاه نکرد دیگر مانند جوجهی در دست من اسیر بود گفتم خانم اسم شما چیست؟ نپرسید اسم من در مقصود شما هیچ تأثیری ندارد. من همان کسی هستم که شما جستجو میکنید. این را می دانم، بسیار خوب. اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد. آیا مایلید ما که با هم راست و سمیمانه گفتگو کنیم؟ از جان من چه میخواهید؟ لحن او تأثرآور بود. دلم را سوزاند. خجالت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم. فرنگیز هم مانند هم یادم آدم‌های وقتی ذلیل میشد رقت انسان را برمیانگیخت اینها فقط در فرمان فرمانروایی می توانند بزرگ جلوه کنند وقتی ضربتی خوردن ذلیل و بیچاره می شوند جوابی ندادم اما او پرسید آقای ناظم آمده اید اینجا که مرا شکنجه بدهید نه برعکس آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زجر ما میداده رهایی ببخشم منتها مقصود اساسی من این نیست شما واقعا رجب تنها کسی بودید که استاد را می شناختید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 شما میخواستید با من صادق و صمیمی باشید مگر تا به حال به من دروغ گفته اید؟ بله تمام آنچه در تالار موزه درباره فروش آثار استاد ماکام شما گفتم دروغ محض بوده است از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه تک هم که قلم استاد به آن خورده باشد بیرون نرفته اما همیشه اینطور نخواهد بود تا به حال آثار استاد را هیچ کس ندازدیده که سهل است حتی من تا آنجا که توانستم بسیاری از پردهها و ترهای استاد را هم که خودش در زمان حیاتش به این آن فروخته و بخشیده جمعوری کردم اقلا صد اثر او را به نفع دولت خریدم و به این موزه برگرداندم. با وجود این امشب این تابلو را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم پس با پول نمی توانید مرا راضی کنید ده سال است که چشم راه شما هستم شما صاحب این چشمها هستید زن ناشناس تکان سختی خورد. هر دو دستش را روی لبه های صندلی راحت گذاشت. بدن نرما ورزیدهش را راست کرد و گفت: نه اینطور نیست. این چشم مال من نیست. اما این لب و دهان و پیشانی و زلف ها وگوونه که حتما از آن شماست؟ شاید. شاید؟ پس چطور چشم از آن شما نیست؟ آقای نازم. لحنش مالایم و التماس کننده تر شد هم دلم سوخت زیاد سخت گرفته بودم آقای نازم با یک کلمه نمی شود جواب داد شاید حق با شماست شاید اگر یک بار در زندگی آنچه را که بر سر من آمده نقل کنم و آنچه را که به قول شما به هیچکس کس نداده به شما بدهم برای من بهتر بشود و این سایهی که همه جا دنبال من از از من دست بردارد شما میل ندارید یک گیلاس کنیاک بخورید؟ من سردکان دادم. در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول می کشد. اجازه بدهید دستور بدهم که برای شما هم شامی درست کنن. برای خودم هم میگویم یک گیلاس کنیاک بیاورم. اعصاب من از هم پاشیده است. از ساعت چهار و نیم که پیش شما آمدم تا حالا در با وحشت هستم. اما فقط امشب اینطور نیستم الان یک ماه است که به تهران آمدم و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم هر وقت سر سال او می شود همین حال به من دست می دهد. مخصوصا به نقاط دور دست میروم که دستسی به تابلوها نداشته باشم امسال دیگر تاب نیاوردم از جایش بلند شده بود داشت میرفت به طرف در گفتم بسیار خوب تا شما دستور دستورشان بدهید من تابلو را باز میکنم نه صبر کنید، برگشت به طرف من دستش را رو روی بازوی صندلی که روی آن نشسته بود گذاشت و گفت صبر کنید، من الان آماده نیستم در را باز کرد و بیرون رفت من اساسی اتاق را تماشا میکردم بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ از مرتب چیده شده بود یک چراغ پایهدار بلند با حباب سبز آنجا روشن می کرد طرف راست نیست قفسه کوچکی بود پر از کتاب به زبان فرانسه روی میز عکسی از استاد دیده میشد قاب منبت کاری داشت پرده های اتاق به رنگ سرم بود روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود چند مجسمه قدیمی چیده بودند منظره جماران بر جلوی اتاق می افزود دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسیه اتاق را تکمیل می کرد. از جایم بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابلوی استاد را تماشا کنم. در همین زم زن ناشناس در را باز کرد و دنبال او کلفت با یک سینی و دو گیلاس وارد شد. آنها را رو روی میز گذاشته رفت. زن ناشناس از کمد یک بطری کنیاک در آورد رو روی میز گذاشت و نشست. یک ته گیلاس کنیاک خورد. کمی فکر کرد و گفت: بگذارید اول بگویم چگونه با او آشنا شدم بعد هرچی میخواهید بپرسید من سوالی ندارم از شما بکنم دلم میخواست هرچی بیشتر درباره او صحبت میکردید من نمیخواهم از زندگی خودم برای شما چیزی بگویم در زندگی من هیچ چیز ای که متمایز از سرنوشت بیشتر مردم باشد وجود ندارد و تازه شما چه علاقهای به من و سرنوشت همسال من میتوانید داشته باشید اما استاد به اندازی یک سر و گردن از همهٔ بر خودش بزرگتر بود درست یادم نیست در چه سالی با او آشنا شدم اما خوب میدانم که من نوزده یا بیست سال بیشتر نداشتم دختری بودم پر جرعت. خودم می گویم پر جرعت. اما دختران هم ترازم مرا پر رو میدانستند میتوانستم به کسی که هرگز او را ندیده و نشناختهام خودم را معرفی کنم و ساعتها حرف بزنم از مطالبی که اصلا مورد علاقهی طرف نباشد از چیزهایی که خودم هم وارد نبودم گفتگو کنم و چون خوشگل بودم این جسارت من زننده نبود جوانها همه از این گستاخی من خوششان می آمد و به من پروبال میدادند در مدرسه بچه خرفتی نبودم اما استعداد من بیش از آنچه در باطن من وجود داشت گل می کرد تنها فرزند پدر و مادرم بودم و مرا عزیز دردانه باراوردن مادرم زن دوم پدرم بود و کوچکترین تاثیری در اداره خانه نداشت تمام کارها به میل پدرم انجام میشد مادرم فقط نقی میزد و بعد تسلیم میشد از همان کودکی از نقاشی خوشم میآمد گاهی با آب مناظری از طبیعت میکشیدم پدرم آنقدر داشت که دستش به دهانش برسد و زندگی من همیشه در رفاه و آسایش مادی بوده است هرگز احتیاج و فقر را در زندگی احساس نکردم پدرم که مرا لوس بارآورده بود خیال میکرد که خیلی با هستم به من می گفت تو خیلی هنر داری و اگر کار کنی روزی بزرگترین نقاش زن ایران خواهی شد. اغلب وقتی پدرم با دوستانش بود و ورق نمیزد یا درباره سیاست روز و مسائل جاری مملکت صحبت نمی کرد برای ترزی خودخواهی کارهای مرا به آنها نشان می داد و در تمجید من شاهنامه می خاند. اگر خوشگل نبودم و کارم را جدی می گرفتم شاید چیزی عذاب در می آمد. اما چون سرسری و دمدمی بودم و هر مانعی به میل و اراده پدرم از جلوی پایم برداشته میشد، از 16 سالگی حس کردم که با صورتم و جرأتم بیشتر می توانم جلوه کنم تا با هنرهای دیگری که داشتم و یا می توانستم کسب کنم. در نتیجه هیچ کاری را جدی نمی گرفتم. همیشه راه سرتر را انتخاب می کردم. در همان ایام روزی پدرم از او از استاد ماکان صحبت کرد. من 2 سالی بود که دارالمعلمات را تمام کرده بودم. و از بیکاری داشت جانم به لب می رسید پدرم گفت که ماکان در فرنگ نقاشی یاد گرفت و مدتی در ایتالیا بوده و اهل هنر به او احترام میگذارند تابلوهای های او را میخرم و دارد اسم و رسمی در میان رجال پیدا می کند از جمله گفت که درس خصوصی می دهد و خوب است که من هم پیش او بروم و نقاشی یاد بگیرم مادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و نقاشی را حرام می دانست زیاد با این پیشنهاد پدرم موافقت نداشت تا دست ما پدر و مادرم سر این که تکلیف من چیز و چه باید بکنم گفتگو داشتم. مادرم میخواست مرا شوهر بدهد. اما پدرم مزده زنداری را چشیده بود و ته دل میل داشت خودم شوهری را که باب طبعم از انتخاب کنم. گاهی کار به اوقات تلخی میکشید. روزی کارهای نقاشی خود را که به نظرم خیلی زیبا میامد دست گرفتم و بیان که به کسی چیزی بگویم رفتم به کارگاه او. نمیدانم. من هیچ وقت نتوانستم روحیه خودم را تحلیل کنم. هرگز نتوانستم. نه اینکه به فکر نیافتاده نه نتوانستم به ععللی که مرا وادار به کاری کرده که شایسته من نبوده پی ببرم. کار زشت کاری که برازنده دختری از طبقه من نبوده کردم. اما هیچ وقت متوجه قپه آن نشدهام. نمیدانم چه بود و به چه دلیل؟ در هر صورت از همان نخستین بار که او را در کارگاهش دیدم. فهمیدم که با یکی غیر از آنهایی که باشان سر و کار داشتم روبرو شدم. جور عجیبی با من سلوک کرد. در حالی که دیگران همه تحت تاثیر خنده و گشاده روی من میرفتند، او نه فقط به خنده های من، به خنده‌ای که از صمیم قلب از چشم و دهان و گونه و لبان من برمیجست و کاملا ناشی از جوانی و زنده دلی من بود، توجهی نداشت. حتی احساس کردم که بیاعتنایی هم میکند اساسا آدم مغرور و خودخواهی نبود اما خیلی طول میکشید تا با کسی اخت شود قشر سردی همیشه قیافه‌اش را میپوشاند و خیلی طول میکشید تا درون خود را به کسی بنمایاند برخلاف دیگران خیلی سرد از من پذیرایی کرد اما سردی و خوشی آن چیزی نبود که مرا برنجاند مثل اینکه من اصلاً برای او دلربا نیستم به من بدی یا بی‌احترامی نکرد کاش میکرد. تا عقالان آدمان نقاب دروغی را که در این موارد به صورت می زند، بر برمی‌داشد و او هم مجبور می‌شد درون مرموز خودش را نشان بدهد. اما همین رفتار عاقلانه و معدب خالی از توجه او مرا آزرده بود. وقتی خواستم هایی که کشیده بودم به او نشان بدهم، رفت پشت میز کوچکی نشست، مثل اینکه می‌خواست تشریفاتی برای تماشای کارهای من قائل شود. و اظهار نظر او جنبه خصوصی و دوستانه نداشته باشد. چند ورق نقاشی را در دست چپش گرفت و با دست راست برگ رو را که تماشا میکرد زیر برگه های دیگر میگذاشت و دومی دو را تماشا میکرد تمام این بازدید شاید یک دقیقه طول کشید من منتظر بودم که مرا ترخیب کند انتظار نداشتم که مانند دیگران به من بگوید که شاه کار ساختم اما اقلا میخواستم بگوید خب بد نیست کجا یاد گرفته اید بالاخره مبتدی هستید و باید یاد بگیرید. در عوض خشک و سرد آنها را به من پس داد و گفت: « انشالله خوب می شود. یکی از کارهای من صورت کلفتی بود که در خانه ما کار میکرد. این دخترک از بچگی در خانه ما بزرگ شده بود و در شانده سالگی شوهر کرده بود. شوهرش پس از یک سال او را با یک بچه گذاشت و سرربی شده بود. من این زن را با بچهش با آبرنگ کشیده بودم و به خیال خودم، زجری را که این زن تحمل می کرد در وضع نگه داشتن بچه در حالت چشم و در دهان باز او گنجانده بودم. دیگران که این ترهای مرا میدیدند یک کلاخ چل کلاخ تمجید می کردن. در صورتی که او نه فقط یک سخن تشویق آمیز نگفت، حتی آن را بیش از ترهای دیگر هم که بیشتر منظری طبیعت بود مورد توجه و دقت قرار نداد. این مرد در سخن گفتن عجیب صرف بود. برای هر کلمه ای که میخواست ادا کند ارزش قائل بود. وقتی او را به من برگرداند، من کمی نشستم. شاید به امید اینکه که به طور کلی به من توصیهایی بکند. اما هیچ نگفت. گویی میخواست به من بفهماند. خب اگر دیگر فرمایشی ندارید، مزاحم من نشوید. من هرگز چنین آدمی را در عمر خود ندیده بودم. اگرمی توانست بگوید که اگر نقاشی یاد بگیرید، بیایید مدتی کار کنید تا ببینم چه میشود. آخر وقتی وارد کارگاهش شدم گفتم که آمدم یاد بگیرم شنیدم که درس خصوصی میدهد اساساً این مرد علاقه به تدریس داشت از همان تعلیم شاگرد های خصوصی بعدهای مدرسه که امروز شما نازمان هستید درست شد نمیدانم چرا این مرد از من بدش آمد و الا دلیلی نداشت که با من آنقدر سخت بگیرد من منتظر بودم که کارهایش را به من نشان بدهد مانند مردم دیگر با من گرم بگیرد. خنده های مرا جواب بدهد. و حتی اصرار داشته باشد که هم به او رجوع کنم. و یا اقلا یک کلمه بگوید که فلان طرح من فلان عیب را دارد. نه. برعکس. هرچه من بیشتر می نشستم. او سردتر با من رفتار می کرد. آخر سری دیگر خنده در لپایی من خشک شد. همان برخورد اول به نظر من تحقیرآمیز بود گویی نادانسته میخواست به من توهین بکند چه چیزی من برای او بیزاری آورد